بسم الله الرحمن الرحیم اما از بیت 51 به بعد بحث صدسو میکنی یک شیشوم و کسام چه کسانی هست تا آیه تا بیت 64 و چارم حالا از پنجاییک میخونیم انشاءالله تا 64 و چارم. میفرماید والصدس فرز سبعة من العدد اب و ثم بنت ابن وجد جد ميقى كالصدس سهم و تعداد هست هفت نفر هست هفت سنف يك أب و أمن معدر ثم بنت ابن سپس دختر بسر و جدو و پدر بزرگ اینا شدن چارت تو این بیتا ورده بود و بنت الابی ثم الجده و خواهر دختر پدر یعنی خواهر پدری ثم الجده سپس مادر بزرگ اینا شدن تا وولد الام تمام العده وفرزند مادر که اینجا عده تمام شد یعنی تعداد اون 7 نفر که گفت 6 یک شیشم سهم 7 عدده است اینجا تمام شد ببین قد صدت فرض سبعه من العدد اب و ثم بنت وجد بنت ثم وولد تمام با ولد ال ام اد تمام شد هفت نفر شد حالا از اینجا کار میگه که چه زمان مثلا پدر یک ششم سهمش میشه فالابو یستحقو ما ولدت میگه پدر مستحق یک همراه ولد زمان که میت ولد داشته باشه پدر یک ششم میبره شخصی مرده یک پسر داره و پدر داره. اینجا پدر یک ششم میباره. و هاکده الامو ولو اینکه دختر هم داشته باشه. فرقی البته نمیکنه. کنه. یک ششم و هاکده الامو به تنزیل سمد و این چونین یعنی و هاکده الامو به تنزیل سمد و این است مادر به نزول الله سمد پس الله تعالی در قرآنش هم مادر رو یک ششم داده چه زمانی که زمان میت ولد داشته باشه فرزند داشته باشه خوب آ فقط با ولد این پدر و مادر یک ششم میبرن؟ نه ادامه میده و هاکذا مع ولد الابن لذی مازال يقف اثره و یحتذی و همچنین پدر و مادر یک شیشون میبرن با فرزند ابنه. اگه یه پسری داشته باشد اون پسر فرزند داشته باشه با پدر و مادر هر یکی یک شیشون میبرن مازال یقف و اثره میگه یحتدی میگه در پی پسر میره ولد پسر پس همانطور که با ولد پدر و مادر یک ششم می‌بردند با ولد ابن با فرزند پسر هم کتابه اون ابنه یک ششم می‌بره و هو لها ايضا مع الاثنين من اخوة المیت میتی المیت فقس هذین می فرماید که یک شیشم همچنین سهمی و هوا لها این هوا به صدس برمگرده و یک شیشم برای است، لها برای مادرست همچنین مع الاثنین من الاخوت المیتی با دو نفر از برادران یا خاهران میت فقس هذین پس قیاس بگیر بر این دوتا با لاتن از این رو یعنی اگر میت دو تا برادر یا خواهر داشت و بیشتر در این حالت مادر یک میبره شخصی مرده دو برادر داره یا دو خواهر داره یا یک برادر و یک خوهر داره در این حالت مادر یک میبره والجد مثل ابي اند فقده في حوض ما يصيبه ومده و پدر بزرگ پدر پدر مثل پدر است اند فقده هنگام نبود پدر هنگام فاقد بودن پدر در آنچه که پدر می برد پس پدر سه حالت داره اگر میت فرزند پسر داشته باشه سهم پدر یکی شماست اگر پدر اصلاً فرزند نداشته باشه پدر عصبه خالی هست اگر فرزند اگر میت خودش دختر داشته باشه اینجا پدر یک شما ما فرزند بیبره و عتبه هم هست باقی مانده رو میبره این سه حالتو پدر داره میگه والجد مثل الابی اند پدر بزرگ مانند پدر است هنگام نبود پدر فی حوز ما یسیبو هوا در آنچه که پدر میبرد پس پدر بزرگ در آنچه که به پدر میرسد مانند پدر است فی حوز ما در آنچه که در نصیبی که به پدر میرسد و مده و در رزقی که نصیبه پدر میشه نصیبه پدر بزرگ هم میشه الا اذا كان هناك اخوه لكونهم هم القرب و اصح ما عليه یک استثنای رو اینجا آورد که پدر بزرگ مثل پدر نیست الا مگر اذا كان هناك اخوه مگر زمانی که میت برادر داشته باشه اگر زمانی که میت برادر داشته باشه که الوت این یک بحث اختلافی هست ولی در هر حال طبق مذهب شافعیه قول راجع همین است که میبرند برادران همراه با پدر بزرگ لز اینجا مطرحش میکنه و این استثنا رو مولف رحمه الله میاره خب این شد استثناه اول الا اذا کانه هونه که اخوه مگر زمانی که میت خواهر برادر داشته باشه لکونه هم فی القرب و هو اسوه به که در نزدیک بودن یک درجه یک فاصله رو دارند پدر بزرگ و برادر و خواهران همانطور که پدر بزرگ با واسطه پدر به میت وصل میشه برادر و خواهران هم به واسطه پدر با هم دیگه وصل میشن فاصله اندازه هست ولی پدر نه اگر پدر وجود داشته باشه دیگه خواهر و برادر ارث نمیبره شخصی فوت کرده پدر داره با یه برادر داره یا یه خواهر داره دیگه اینجا برادر و خواهر نمیبرند ولی اگر شخصی فوت کرده یک پدر بزرگ داره یه برادر داره اینجا دیگه پدر بزرگ نمی تونه طبق نظر شقافه و دیگر فقه های دیگر پدر بزرگ نمی تونه اینجا خواهر برادر تو حج بکنه از عرض بکنه لذا همراه هم دیگر عرض میبرند پس از اونجای که در بیت پنجاشیش گفته بود پدر بزرگ مثل پدر است اینجا میگه مگر زمانی که برادر باشه که اینجا داستان فرق میکنه بله تو در نزدیکی به میت با مساوی هست. بعدش میگه که او ابوان معهما زوج ورث. فالام للثلث مع الجد وارث یک فرق دیگه پدر بزرگ با پدر داره در بیت 58 اون میگه یا زمانی که پدر و مادر میت وجود داشته باشند و همراه پدر و مادر شوهر ارث ببره اینجا پدر بزرگ فرق داره با پدر چطور؟ اگر مسئله شخص فوت کرده باشه پدر داشته باشه مادر داشته باشه و شوهر شوهر رو سهمشو میدیم که یک توفمه باقی مانده مادر رو از باقی مانده یک سوم میدیم. با مادر رو از باقی مانده یک سوم میدیم ولی زمانی که به جای پدر پدر بزرگ باشه تو مسئله، یعنی شخصی فوت کرده پدر بزرگ داره مادر داره و شوهر اینجا دیگه مادر رو از باقی مانده یک سومم نمیدیم بلکه از کل مال یک سومش میدیم بگذار که از پدر بزرگ بیشتر گیرش بیاد مشکلی نیست ولی زمانی که پدر باشه به جای پدر بزرگ اونجا دیگه از باقی مانده بعد از این که شوهر سهمیشو برد مادر رو یک سوم میدیم تا بیشتر از پدر گیرش نید که این مسئله در درس قبلی حل شد در بحث یک سوم باقی در بحث سلس فالامو مع الجد تریس میگه مادر بزرگ همراه با چی مادر همراه با پدر بزرگ یک سومو ارث میبره ولی همراه با پدر یک سومه باقی رو می‌برد و هکذا ليس شبيه بالابي خب این یکی از مساله قراون بود در مسئله دیگه قراون یا عمریتین هم باز هم مادر یک سومه باقی رو میبرد زمانی که میراث بر زن بود زن میت مادر میت و پدر میت اونجا باز هم بعد از این که زن میت یک چارم خودشو میبرد مادر یک سفوم باقی مانده رو میبرد ولی بجای چون اونجا زن بود پدر بود با مادر این اونجا به خاطر این مادر رو یک سفوم میدادیم یک سوم باقی مانده که سهمش از پدر بیشتر نشوند ولی اینجا که به جای پدر پدر بزرگه این کار رو بلکه از کل مال مادر رو یک سیفون میدین بگذار که سهمش از پدر بزرگ بیشتر باشه و حکذا لیست شبیه به الابی فی زوجت المیتی و ام و اب و همچنین شبیه به پدر نیست پدر بزرگ در مسئله ای که زوجه المیت وجود داشته باشه و مادر و پدر اینجا مادر یک سیفون باقی رو میبره زمانی که پدر وجود داره در حالی که اگه پدر بزرگ باشه مادر یک سیفون کل مال رو میبره که سهمش بیشتر میشه مسلش هالشدرا وحكمه وحكمهم سيأتي وحكم پدر بزرق وحكم إخوة برادر وخاهران بيت سيأتي خاهدامت مكمل البين في الحالات باب بيان كامل در جاي خدش خاهدامت وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البين في الحالات وحكم پدر وحكمه وحكمهم وحكم برادران واحد آمد در باب خاص که اونجا اسمش الجد مع الاخوه پدر بزرگ و خواهر برادران مکمل البيان في الحالات كامل البيان خواهد آمد در حالات در تمام حالات پدر بزرگ و اخوه في الحالات يعني در تمام حالاتي که پدر بزرگ برادر و خواهران میت داری إن جاك كامل بحشش خا هد عماد حالاتي مختلفة في دار ب بخاطين قرط في الحالاتي وبينت لابن تأخذ الصد إذا كانت مع البنت مثالا يحتضى و بنت إبن ابن بنت إبن يعني دختره بسار خل تيجي باش تجيب إشتار يكشيشو ما مي باري. شروع ميبره؟ يكشي شو ميبره؟ إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى زمانيك باشد حمراه با دختر كون مثلش هست؟ بنت عبل مثل بنت هست مثلش هست که بش اقتدا بشه که بنت ابل به بنت یحتذى قیاس گرفته میشه دقت داشته باشید و بنت الابن تاخذ صدقه اذا كانت مع البنت مثلا و بنت ابن یک شیشو میگیره زمانی که باشه همراه با دختر مثلا يحتذى مثالی که ازش قیاس گرفته میشه یعنی چی یعنی چی بنت باشه چی بنت ابن باشه چی بنت ابن ابن باشه چی بنت ابن ابن ابن باشه فرقی نمی کنه بس و بنتو لابن تأخذو صدس ایده کانت مع البنت ميثالا یحتذا و بنت این یکش شمی زمانی که هم راه با بنت باشه و هم چونین مثال های دیگی که مثل بنت ابن حسن يعني بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن هرشي پاين ترونه وناك مثل بنت ابن حسن وناهم همراه بنت يكشي شم مگرد وبنت الابن لابني تأخذو السودس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى و بنت ابني يكشي شم مگرد زماني كه همراه بعد دختر باشه و همچنين وناك مثل بنت الابن حسن وازش قياس گرفته مشان خب اینجا مثالی میزنیم شخصی فوت کرده یک دختر داره و یک دختر پسر دختر میبره یک دوم دو دختر پسر میبره یک شیشان چون سهم دختر نهایت سهمش دو سوم است ما یک دوم دو اون برده چه عددی به اضافه یک دوم میشه دو سوم می یک شیشان؟ بیشک میگن تکملت را حل نهایت سهمی که در قرآن برای دختران تعیین شده دو سیفومه دختر که تنها بشه اومده چقدر میبره؟ یک دووم میبره حالا باقی مانده دختر پسر وجود داره حالا یکی یکی چی بیشتر سهمش به اندازه میشه که با اضافه یک دووم باید با هم بشن دو سیفوم. یک شیشومه یک شیشوم به اضافه یه. یک دووم با هم میشن دو سیفوم. بیشتر از این دیگه دختران سهم ندارند که بهشون داده میشه یک دو که اون برد. باقی مانده یکشی شماوه دختران پسر داده میشه و هاکده الاختو مع الاخت اللیتی بالابوین یا اخیه ادلتی. و همچنین خاهر همراه با خاهری که با پدر و مادر ادلتی بمیت وصل میشه یا اخیه ای پس اینچونین از خواهر با خواهری که از جهت پدر و مادر خواهر میتند یعنی اگر پس یک ششون سهمیه خواهر پدری است همراه خواهر شقیقه و ها این اخت اولی خواهر پدری رو میگند چرا چون از اخت بعدی دیگه دا دانسته میشه مع الاختلتی بالابوانی و همچنین چنین خواهر با خواہری که از دو طرف خواهره میت است یعنی هم از طرف پدرش هم از طرف مادرش پس اون خواهر اولی خواهر پدری است و همچنین چنین خواهر پدری یک ششم هست سهمش زمانی که میت خواهر شقیقه داشته باشد اینجا خواهر شقیقه یک دومو میبره و خواهر پدری خواهر شقیقه یک دومو میبره و خواهر پدری یک رو که تکملت و سلوثه میشه چون سهمیه یه هم نهایتش دو سفو ما هست یک برد خواهر حقیقی شقیقه یک شیشون میدن به خواهر پدری یا اخیه ای این عدلتی ادامه اون جمله قبل هست و هاکه در اختو مال اختلتی بالابوینی عدلتی و همچنین از خواهر پدری با همراه خاهری که از دو جهت از پدر و مادر عدلتی وصل میشه به میت انتصب یعنی نسبش به وصل میشه و صد و صدص فرز جده فی النسب واحده واحده كانت لام او ابي بله میگه و یک شیشم همچونین فرض جده هست در نصب نه در رزائی و شیرخاری و یک شیشم فرض سهم جده هست در نصب یعنی جده نصبی نصب یعنی نصبی نه که ميجي واسود سفرزو جدتين في النسب ويكشي شم سهمية جده هست در نسب واحدة كانت لأم أو أبي بحلي يكشي شم سهمية جده هست زماني كي يك نفر باشت يا بيشتر چه م... كانت لأم أو أبي چه بادري باشت چه پدري یعنی جده چه مادر مادر باشد چه مادر پدر باشد سهمیش همین یک شیشم وصد و صدق فرض و جدتین فی النسب واحده كانت لأم او أب و یکششون فرز جدد جدین نسبیست یکی که باشد چه جدده مادری باشد چه پدری باشد خب از اون جایی که بحث جدات دقیقا در, در درس بعدی هست زمانی که بوتعدد باشن اونجا مفصل بحثو میکنه اینجا لفظ واحدته رو آورده یعنی زمانی که یکی باشه رو بحثو جلوتر میکنه وصد فرض جادته في النسب واحده كانت لام او آلن و سدس فرز جده نسبی است یکی که باشد چه مادر مادر باشد یا مادر پدر باشد و ولد الام ینال سا و آخرین گروهی که یک شیشمو میبره فرزند مادر است زمانی که تنها باشد و ولد الام ینال سا فرزند مادر یک شیشم میبرد شرطش چه و شرطو فی افراد لا لایونسا شرط اینیست که یک نفر باشد و این شرط میگه فراموش نشه شرط فراموش نشه یعنی یک نفر باشه یک شیشم میبره چون از یک نفر به بالاتر بودن فرزندان مادر چه زن چه مرد فرقی نمی کنه اون موقع سهمیش دو سفوم یک سوم میشه و یک شیشم نیست زمانی یک شیشم هست که و شرطو فی افراد لا تنها باشه شرط یک نفر بودنش میگه فراموش نشه پس درس بعدی مسئله مادر بزرگه ها رو توضیحش هست انشالله که با هم خواهیم خواهیم